خانم الا بخشی سلام وقتت بخیر امیدوارم که اگر این ویس رو 255404 و دقیقا سر تایمش گوش میدین حالتون خوب باشه نمونه بارزه یک آدمی که از صفر شروع کرده شما هستین سایت رو از صفر شروع کردین و تو این سالها همیشه کمک کردین که سایت ما و حالا روابتون می ما رو به جلو باشه قطعاً نبینن ما سایت رو قسمت فروشگاه رو قسمت او سایت رو و مدیریت سایت رو مدیون شماست شما هم کم نذاشتین تو این چهار پنج سال و به بهترین شکل ممکن این کار رو انجام دادیم قطعا خیلی جاها تلاش کردیم که اتفاقات بهتری بیفته ولی باید این موضوع رو بدونیم که هنوز سایت های نوین الماس جای کار خیلی بیشتری داره و امیدوارم که با هم و در کنار هم و با افتخار همکاری شما بتونیم که های خوبی رو در مسیر سایت و فروش اینترنتی ط کنیم و افتخار همکاری با شما تا بازنشستگی برای شخص بنده و شرکت نوین الماس وجود داشته باشه. امیدوارم که سر حال و قبلغ باشید.